بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والاله وصحبه اجمعين اما بعد ما بترتيب بحث صحيح و بعد حسن و بعد ضعيف و بعد ضعيف جدا الان بحث موضوع ك بحث راویان و بحث کتاب هایی که در این زمین نمشته شده بحث طریقه های تشخیص یک حدیث موضوع را خواهیم داشت محل کتاب سعی کرده که از رتبه بالا از صحیح شروع بکنه تا اینکه که به پترین جاها و پترین احاد نوع احادیت برسه که الانم رسیدیم بحث حدیث موضوع الان این رتبه های احادیت از لحاظ شکر إن فاك مش صحيحة إن فاك مش حسنة إن فاك مش منكرة يا متروكة انها موزوه بحث موزور رؤى دامش الموضوع ما كان مدل مخالفة نقواعد وراني كذب كاربعين البدعانية وكنصفة علي, علي الرضا المكتوب عليه وهو مرات امين ومرتفقوا على أنه كذب ويؤلف ذلك باقرار وعنري فبالتجربه الكذب منه ونحو ذلك امم از فيك الانثوريك بحث خود موضوع شنو حدیثیه در تعریفش امام سیوتی و همچنین امام الحدثی میگه حدیثی که مختلق و مزلوب و مصنوع باشه مختلق مصنوع و مکلو مختلق خلق شده اصل کلمه‌ی وضع در لغت عربی وضع شیء علی ای یعنی جعله علیه قرار گذاشتن یک چیز به چیز دیگه چسباندن یک چیز به چیز دیگه مثلا به فرض من کتاب را روی این میز بذارم بهش میگن چی وضع یه گذاشتن این از لغات لغت خود این موضوع در اصلاح شرعی حدیثی بر رسول الله چسبنده بشه حدیثی که به رسولا دروب بسته بشه. و اون چیزی که مجموع تعریف و علمان درش کنجان بشه در تعریف اصطناحی حدیث خلق شده یا درست شده و دروغ بسته شده. را این برای خودش این اصطلاح برای هر محصهش یک شرط شروطی داره چرا الان گفتن مختلف خلق شده ایجاد شده یعنی چیزی که نبوده ایجاد بکنید یا مطنوعیت اصلی بوده روی اون اصل چیزهای فروعات ما بریم بعد فضایل اعمال بیاد نماز عوابین رو داشته باشی اینگه شفیقیات بگه نه نماز عوابین بعد از مغربه و شش رکعته و فدانه بیاد روی اون اصلی که بوده فرقیاتی بود داره به چیزهای دیگری درش جا بده و یه اینکه مکدوب دروغ یک شخصی بگیاد صراحتا دروغ بگید حالا که بین اختلاق و دروغ یک تناسوبی هست یعنی با هم دیگه رفت دارن در بحث مکدوب لمس عمد میشه یک شخصی مثلا عمدا دروغ بگید ولی در بحث بحث مختلف خلق شده این چیز لمس نمیشه معمولا چیه اینه که مثلا دفعا یه چیزی یه،, یه کسی یه چیزی خلق میکنه درست میکنه یک اشتباهی یه کاری انجام میده عمدرش نیست. لیکن دروغ عمدرشه. اگر که عمدرش باشه که دروغ نبوده. بوفتان بود. پس این تعریف استرافی. حدیثی که مختلق، مسنون و مکذوب باشه بهشی میگن بهش میگن حدیث موضوع. Africa this piece of mondoNet will be the segueing talks of the Rov Empaters drop and hath them o who answered are, the first person to live and with is Echma if they are соon Sunnah, indones all Sallabhan Designer, Echmaq awariya Mus taciqbalman amid Ralaadwa tishqbaam مثلا بالفرد اونم بیام اشتباه بکنم بگم که رسول الله فرموزه که چین کار رو بکنی در صحیح که رسول الله گفت نکنی دروغ شد این نشد دروغ شد حالا اینجا غیر عمده آیا این غیر عمد حدیث من موضوع هست یا نیست بده است اصل اون باید میشه موضوع هرچنگ که وعید و اون عذاب و اون جایگان که در دهنم مشخص شده برای اون کسی که غیره هم بوده کارش در هم بوده دروغش غیره هم بوده اون جایگاه جایگانتیش نخواهد شد اون وعید شاملش نخواهد شد خب حالا محلط کتاب مثال میزنه برای این مثاله میگه از جمله کتاب هایی که أحاديث الموضوعات مثل كتابة أربعين ودعانية تعليف أبونا محمد بن علي ابن عبيد الله ابن أحمد بن صالح ابن سليمان ابن ودعان القاضي الموسيلي محمد بن علي القاضي الموسيلي صالة شرطة نواري خیلی از انکار میکنم برشت از جمله خود امام زهبی در میزان عددال و ابو طاهر السلاحی که میگه حالک و المتهمون بالکذر و همچنین ابن حجر در نسان میزان که خود ابن وزعان صاحب کتاب یعنی همون محمد بن علی که معروف به ابن ابدعان این احادیث را از زید بن رفعت وزیده زید بن رفعت کثیری که برای اخوان صفا اخوان صفا ضروری از اسماعیلی ها ضرورت شیعه کرده یعنی احادیث گذاشته برای تایید مذهب اسماعیلی احادیث رو گذاشته حالا این ابن بدعان میاد احادیث این زید بن رفعه رو میدونده و به خودش نسبت میده و اسناد از خودش میذاره بر, بر اون احادیث یعنی میخواد اون احادیث رو تحقیق بکنه این اشوات متوری رو میاره مثلا به فرض اون اسناد میگه خودش میگه مثلا زید بن رفعه حدثنی فلان عن فلان این میگه نه از طریق خودش حدثنی فلان به همون حدیثی کسی که چی؟ زید بن رفعه داره در, در اصل دراست ابن بدعان نه این که از کسی دیگه دوباره این حدیث را بلکه این حدیث را دوزدیده و اومده در این کتاب جمعش کرده خب به همچین این از جمله کتاب هایی که هست کتاب علی رما که دروغ برش درسته شده که این کتاب را عبدالله بن احمد ابن عامر از پدرش عبدالله ابن ابن احمد ابن عامر التدرش از علی رضا از پدرانش این کتاب را نقل میکنه که این کتابی که به نسبت داده میشه به دا علی رضا این کتاب مربوطه امام احسنه ابن علی زبری درباره ان شخص يكي كان اميا دابري علي رب كان اميا لم يكن بالمرضي باخذ دابري فكن مع عبد الله بن احمدي كان اميا لم يكن بالمرضي مات سنه 324 الهجره بك في سواد بود بس سال 324 فكر و امام قاری در کتاب المسنع میگه عبدالله بن احمد از بدلت علی و بلاغ پدرنش نصه باطل و موضوعی را روایت میکنه میگه که ما تن فقط عن وضعی او ان وضع ابيك از خودش از دروغ خودش و پدرش جدا نیست یا خودش یا عبدالله بن احمد دروغ گفت یا احمد احمد ابن خب مرتبه اول میگه بہوا مراتین بحث در کتاب گوید دو تا کتابی که در احادیث موضوع زیاده یعنی مختص احادیث موضوع کتاب نوشتن یعنی اینو میخواد بگه امام ذهبی که فکر نکنید که کسی نیست بیاد احادیث دروغ را نقل بکنه و در این کتابی بگونجه نه هستن اشخاصی نویشتن مثل این دو تا کتابی که داریم حتی اگر ما کتاب هایی که مثل امام ابن جوزی کتاب موضوعاتش نوشته که برای چید به ما مشخص بکنه که احادث موضوعی هستن. خیلی از ایم ابن قیم، امام شوکانی، ایم اومدن کتاب در زنب موضوعات دوشته که برای ما مشخص بکنه ایش این احادث موضوعی هست. لیکن اشخاصی هم بودن که مذهبشون رو تأثیر کردن بر احادث موضوع. تأثیر مذهبشون بر موضوع بوده مثلا هند شكي ابن قدعان داشتيم و عبد الله بن احمد بن عمه مرتبه و رتبه اولش على انه كذب اون چيزي كه اتفاق در دروغ بودن اون راوي و يعرف ذلك با اقرار واضح با اقرار اون شخص دروغش مشخصش اين حديث دروغ پس اولین رتبه حالا اینو میخواد دیگه از چراهایی میتوان یا میتوان تشخیص داد که این روایت موضوعه اقرار خود را که بگید من درو گفتم آیا حالا یا لسان حالش یا خالش یعنی یا گفتش باشه یا حالش مشخص بشته اعتراف و گفتن و اقرار Ziyad al-Rabiyyan, Ziyad al-Khali, Kena, Kudushad bi-snafari bishan. Az jomla Ibrahim al-Hawad, ki da armizan al-Akadadad, adashashnachun mi-konek, ki akadadab bi-konek bedurug-bahtsan wa-durug-bahtsan wa-durug-todan. Baha am-Abrad و محمد ابن القاسم الحسن و میسر ابن عبدالرب الفارسی اینا همه اسماشون هم هم رو در کتاب میزان عتدال به همچین در لسان میزانی اسماشون هد اونهایی که اعتراف کردن نسر ابن الطریف اینا از اشخاص راویان معروفی هستند که اعتراف کردن با گفتشون که درو گفتن و یا اینکه با حالشون مشخص بشه مثلا بالفرد یک شخصی از شیخی نقومی میکنه. بعد از افتاد بشه که مثلا بالفرد این شخص این شیخ کی به دنیا آمده بعد یک تاریخ را ذکر بکنه که در اون تاریخ اون شخص به دنیا نیمه مثل ما مثل واضح میشه مثل احمد ابن محمد ابن الازهر مح احمد ابن محمد ابن الازهر استجستانی از محمد المصفا روایت میکنه بسیار یک سآل میکنه فی ای سن از سن سمیعه من چه موقع داشتنیده سای رزک میکنه که ابن المصفا قبل از اون فوت کرده یعنی با تاریخ که خودش اعتراف میکنه مشخص میشه که این شخص داره دروغ میگه من از شیخ شنیدم یک شخص از سوال سآل میکنه کهی شنیدی میگم سال دوی شیخ هم که کار سر سال سال در سال, سال نوست مشخص شد که من دروغ هستم یا نم شد یا با تاریخ تولد مشخص میشه یا با تاریخ شنیدن مثلا برپر میگه از فلان شخص کهی شنیدی میگه سال دویس خب موقع چند سالت متولد متولده چنی؟ میگه من متولد چنم دویس و پنج یا مثلا میگه ساله نهاده پنج پنج سالش بشه نبیده احتمال داره بشه نبید؟ غیر ممکنه مشخص میشه با لسان حالش که داره دروف میگه خب پس میگه که ба иқрор вазиъш ин ки ки дуруг мегӯй мутасаббӣ мешавад ки ҳадисиш дуруге ва ё о ва ба таҷрубати алказиби мин ва наҳва залик ва ё ин ки сабиқаи дуруг доште боша сабиқаи дуруг доште боша ло бахш худро муқатталан ба ҳадиса месанд мисли مثال با مثال مشخص میشه میگه که بیاد ابن روزی میاد در لرد مهدی خلیفی عبادی میبینی که با کبوته بازی میکنه با کبوته بازی میکنه بعد میگه شنیدم که رسول الله فرمودن و زیاد میکنه او جناح مسابقه نیست مگر در سه چیز که میگه که لازه از دوانی و شطور دوانی آخرش میگه چی؟ در جان با پرنده در چه چیز به در... درستی که مسابقه در چه چیز یکی از اونها حالا غیر از اخت دوانی بشه ده یکی از اونها پرنده دوانی یا با پرنده بازی کردن اونم به خاطر فی خاطر چابلیسی به خاطر خویش به ثواب قاسم نرزی گفتن حالا میاد در وقت اسباب و دواعی و چیز هایی سبب شده که رابیانی بیان دروغ بگن بعد نستی میاد اون Абу Тавро запэш мекунад. Чи дорем дар ҳодисаи саҳиҳа дар Абу Тавро чи дорем? Каси ҳазз. Абу Тавроти суб мешиъа Аллаҳ. Алоҳи шайтон. Тавоққа. Шайтон. Мида. Рузи расул تجربه حادث يعني أظن الواقع ذلك قرار جلبت ميشة تهميتك ميشة تهميتك ميشة ترجل رغمية دوم بلاش وامنهو وامنهو مال أكثرون على أنه موضوع والآخرون يقولون هو حديث فاقة ولا نشتر أن نسميه موضوعا أن نسميه موضوعا هنا من بس أولا برداشت دروغ از راوی مرتبه دوم وقت علماء در روایاتی که مثلا به فرد روایات مطروشه یا ساقطه یا مثلا موضوعه این رتبه دومی که ما میتونیم اینجا دستش بکنیم طبق این کلامی که امام زهری میگه امام زهری اینو میخواد برسمه که حدیث موضوع جاهایی هست که با راوی مشاخت میشه. راوی دروح گوست. حالا لسان یا خالش گفت. یک جاها هست اثنان در ظاهر عمرش صحیحه. لیکن نباطن عمرش یه چیزهایی در حدیث لمس میکنی با آن تجربه که کفت کردی که با احادیت نقوبت و وحی شریف نمی بخاطر همین مثلا آلما گفت در باید روایتش ساقته. روایت مثلا به فرد مطروکه. حتی که در ذات خودش موضوع هم هست. آلما تقویهاشون ایجاب کرده که نگن دروزه. چون راویان رو نشناختن. مشخصی درسته که راویان کیه؟ بررسی نکردن. لیکن ظاهر امرش، ظاهر روایتش کفر مثلا به یا با احال صحیح نمی کنند مثل بحث کشت اینو که میگن که اومد هفت بار تواف کرد دور کعبه و بعد اومد پشت مقام سجده کرد یا حادثی که زناتی گذاشتند گذاشتن که خدا اومد از پشت اولاق وارد شد از مقلش وارد شد از دهانش بیرون اومد که نبا, نبا عقل میخونه نبا نقل می میخونه با هیچی نمیخونه بلگه گفر طریق اونا های اومدن یه حدیث رو گذاشتن نسبت دادن به این که دین خودمون را بدنام بکنن و زشت به مردم برسیونن. آلا در بحث میاد در دوباره ادامه وحث یه چیزهای داریم چطور میشه یک حالم حدیثی میتونه تشخیص کنه بحثش خواهد اومد. بحث. لیکن یک مثلا یک شبههی هست. یه شخصی میادیه که شبه آمرد اشخاص, اشخاص داشتید که مثلا اومدن به این صراحتی دروغ گفتن اعتراف هم میکنن که دروغ گفتن یکی از اونها میگه من, من چارصد تا حدیث دروغ گفتن یکی میگه من هزار تا دروغ گفتم شما اهل سنت از کجا و بقیه رابی مثل اینها ها دروغ کنه باشن چی جواب میگید چی جوابی دارید در مقابل این شکلی چطور میدید دست که این احادیتی که شما در بخاری و مسلم و سنان عمید و فلان دارید از احادیت چنین اتفاقی نمیده چه جواب میدید؟ جواب از چند یک این که اهمه اهل سنت در نقل احادیت خیلی دقیقی بودند هیچ وقت از راویان دروغگو یا متهم به دروغ یا کتی که فسق و فجور درش باشه یا در لحنش در سخنش دروغ باشه هیچ وقت ادیش نقل نمی کردن درسته هیچ وقت حتی بخاری یا یکی از ایمه ایمه ای که پیرانش بالا آورده بود دروغ بیاد به علاقش که التی حذر پیرانش میخواست دروغ بده به اون علاق گرامت از باید؟ نقل کرد خیر پش بیش میده ازش نقل میکنه بس ایم احلی سنت اولا خیل خیلی دقیق میده دوبما ان رب طلب المرسال خودمان در کمی نشسته در و تعافظ داشتی که دینشو حفظ لکنه و گفتی بلازمی حفظ, حفظ قرآن حفظ سنت چون اگر سنت نباشه قرآن تبین نمیشه و انزلن ایلی که ذکر لتبین لنات پس دوبان خداون تعبود خب گذاشته و اشخاصی مسخر کرده که این دیر را حبت بکنند خاطر همینی که ما شدارم میگه به احمد محمد هیا فلنقزاب و سا اخبی یک فلنقز دروغی یک غیبت بکنید میومدن با هم میشه اصلا جرح راویان رازید فلان راوی چینینه فلان راوی چینینه میومدن با خودشون مذاکره میکردن درباره برای راویان پس میومدن مشخص میکردن که که و کدوم شخص از این راویان چه شخصی میشه داشت رواید کرد و چه شخصی نمیشه رواید کرد مشخص بوده یا نبوده با این کارشون با این تفریقیشون با این که نبای جرح مشخص بوده یا نبوده بله مشخص بوده پس این اشخاصی که اومدن گفتن غیر ممکن گفتن که ما درو گفتیم غیر ممکنه که احادیسشون با چیز احادیس رسول الله صلی اللہ علیه و قاطبشه وباين تحري وباين با حرف وباين با اهتمام وهمته ائمه الحديث رضيته بهم يا دمش ومنهم ومنهم مع الجمهور على واهمي وسقوتي والبعض على والبعض على انه كذب ولهم في اخذ ذلك طرق متعدده وادراك قوي تديق عن عباراته ومن جنس ما يطاو tâyروفيو الجلبه في نقل الذهب والفضه او جوهري لنقل الجواهر والخصوص بالطقميه خب کلمه سقومی میکنه جمهور بر سقوط و غیر معقول بودن هر رباعیته و دیگر گفتن که این حدیث دروغه تقریبا مشابه قول قبله یعنی بعد هر دو تا بر میگردید بگید به, به امامی که میاد اون روایت رو نقد میکنه و وسط دروغ بهش میگی یا واسه اینکه این روایت متروکه متروحه این روایت به درد نخور اصلی نداره با این اوصاتی که از اهل اعیمه حدیث با اهل حدیث داره خب میگه که برای نقد این روایات راه های مختلفی می و درک و فهم قوی که یک موهبه یا یک استعدادی هست که خداوند به اشخاص خاصی داده. مثلا بالفرد سر راف دارید وقتی که میری پیش سر یا پیش که در بانک کار کنه طول قلابی را از اصلی جگونه تشخیص می با دست گرفتن که این پول احلی نیست یا تلاف روش آهن که یک برقی از تلاف روش باشه برید میشه کسی که تلاف روشه تشکیف میده که این تلاف نیست با نگاه کردن مجرد دید که چشو چشو بفره یا نه مشخص میشه پس یک استعداد یک محبه خاصی هست که خداوند به اشخاص خاصی میده که احادیت دروغ را با مجرد شنیدن لم بکنه که این دروغ هست یا نیست؟ خب شاید جای سوال باشه که آیا به مجرد اینکه با عقل نمیدونه میشه حدیث رد کرد؟ ما اولا به هر کسی اجاده نمیدیم که بیاد حدیث را نفرو کنیم همونطور که ما به مهندس اجازه نمیدیم که در علم پدشکی دفعالت بکنه و همچینی به پدش در علم مهندسی در علم حدیث هم همین دو. کسی از کسی که اهل تخصص شنید قبول نداریم و قبول نقایم کرد فقیه نمیاد به ما تا این بکنه بگه که این حدیث موزعیانم باید عالم حدیث باشه که بیاد ما تشخیص بده این بحث خیلی مهمه دوبار اون عالم حدیثی اون شخصی که برای این وقت رو بشتادن آله حدیثه کسی از اینها ما میتونیم احلیت رو بشت بدیم و ازش قبول بکنیم که با الفاظ نبوی آشنا باشه و در ضمن حدیث مطالعه و تحقیق و تعلیف داشته باشه داشت. اما کسی که به تخریج حدیث مشخصی چیز تخریش کرده نکرده نمیدونم از لحاظ علمی فقط الا اسمش گذاشتن دکترای حدیث به فرد عسلان دارجگاه دکترای حدیث داره و فلان مدرک داره و ته خودش میشه فلان عالمانه کلخ در خنده لیکن یک حدیث اونم درستی بکنه این عالم حدیث این میتونه بهمون تعیین تکلیف بکنه این میتونه ما بگه این حدیث موجه یا نه با دکتر بودن و پروفسور بودن نمیشه با مطالعه زیاد خوندن صحیح بخاری و مسلم احادیث تا اون وحی نبوی در ذهن انجام انسان گنجانده بشه. انسان بدون نور نبوید چه نوریه. وقتی که اون نور نبوید را شنافت میتونه مستقیما وقتی که یک حدیث موضوعی جلاوی چه خیلی بیاد میتونه تشخیص بده بله. این پا نور نبوید نبو نمیخونه. مثل هم این چند مدت قبل یک حدیث را دیدم. نوشته بود که حسی که نماد صبح بخونه این قط ج داره از دنیاسممون رو نمیدون و, و فران هزار د تاره عجی بیشتره نماز ظهر این قدر نماز اصلقدر گفتم دوستقی من گفت این حدیث مضوعه دنبالش ککس این پیدا بشه پیدا نشه اصلا اهی هم نداره از کجا گرفتن افسص های شییه خب پس انسان باید گیرک باشه باید با نور نوبگان کاش نباشه بعد حادت اهل سنت را از اهل سنت ташрифе бочи бо муталаъаи саҳиҳаи бухори ваи муслим абу дауд муҳаддис ин китобҳо агар лисан أو في المجازفه بالتصوير والتاريخ بالتصوير والتاريخ والفواعد وكان بيت ناد مظلم أو ناد مضيء كالشمس في اسفيتهي رجل كذاب او والله فيحكمنا بان هذا مختلق ومن قال و رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتوسع عقوانهم في على شيء واحد بحث همون ادامه بحث خودمونه که عالمه این حدیث شگونه میتونن تشخیص بدن که میگه که از جمعه راه هایی که میتونن باش تشخیص بدن یک حدیث موضوع با رکاقت لفظش یعنی با این که امون لفظش رکیق و زشب باشه یکی لفظی که با عقل و شغل نکنه یا مخالف با قواعد باشه قواعدی که ما در نفذ شریعت داریم و یا اینکه که و یا و عجر و خاداش گذاف و بیش شرط حد درش باشه کسی که نمیدونم ده بار گفت لا اله الا الله یک میلیون بار عجر و خاداش بهش نوشته بیشه یا مثلا کسی که هزار بار لا اله الا الله گفت این قد عجز داره داریم در احادید هزار بار ذک گفتن؟ نداریم مجازفه و گذاف گفتن و بیش شرط حد به در رفتن دین با مشقت نیمده با این ترخیب و ترخیبات با این پاداش های بندیار یا با این طرز عبادت کردن با نشرتن در مجزد و نویدن هم هزار رکعت خوندن و ده هزار رکعت خوندن و این چیز هایی گذار چه در ذات خود عبادت و چه در پاداشش انسانی که این چینی چیزی میشنوه و میخونه مستقیمه میتونه تشخیص دیده که چی موضوعه خب این سنف اول که میتونیم بایش ترخیم سنف دوم سنف دومش اصناد تاریکی که یا روشنی که مثل خورشید که در ضمن راویانش شخصی دروغوی وضع باشه و فش علمای حدیث اینشین روایاتی که مخالفت با معقول و نفس سریع درش باشه و یا راویش دروغوی باشه علمای حدیث سکم وزعش سکم دروغش را صادر میکنن و با هم ائمه حدیث در این موضوع اختلافی ندارند در دروودنش خب حالا علما جسر الکواعدی دارند برای اینکه یک حدیث شناخته بشه که دروخ حدیث یعنی امام ابن حجر در کتاب النکات جلد دوم صفحه 843 تا 847 قرائن و دلائیل رو ذکر میکنه که با آن توان به موضوع بودن یک روایت رسید الان قرائن زیاده یکی افراد و زیاد دلائی در اجر و باداش یا در وعید شدید کسی که نمیدن یک گناه از است کسی که مثلا چشمش به یک نامحرم خورد بوی بهش و مشابش نمیخوره یا کسی که موسیقی شنید نمیدونم این خط فلان داره وعید یا پاداش هر دوتا هرچی گذاب دارش باشه بیش از حد باشه این یک از نشانه های دروغه یک از قراهینی که دلیل بود و دروغ بودن اون روایت از جمله یک خبر مهم می باشه مثلا، بحث ولایت امام علی، بحث قدیر خقم، یک امر مهم باشه برای همه مسلمان ها هم مهم باشه، ولی از این جمع هیچ کس روایت نکنه مگر ایک که بله پیانبار صلی اللہ علی و گفته خلیفه بعدت من، من کنت مولا علی و مولا، بعدت خودشون یک چیدی، یک سری روایاتی نقمی کنند، که بله گفته که بعد از من این جانشینه باید جانشین بشه و فلان بشه و نمیدونم بحث را میارن یک امر بزرگ در این جایی بزرگ حالا هرچن که غدیر خون به بزرگی عرفه نیست یک امر بزرگی مثل این شمید واقعی از جل و جمهور صحابه مقری ببینه پقط یک نفر اون را رو باید بکنه آیا این چیزی که سریحش و سراحتش منقوضه و مخالفه با با اکثرین یا مخالفت هم درش نباشه، مخالفت با عقل باشه. یعنی با عقل سریح. ما چون وقتی که بحث از عقل میکنیم، یک عقل عام داریم که بحث بحث بحث برمیگده به سلیلتی انسان. یک عقل دیگه ما داریم، عقلی که برزاشتی از شراب باشه. مثل بست همون کشتی که گفتیم لازم نیست که ما در شرعی بیاد بیت نکشتی نفت در فرانجانش در کعبه نشسته یا ثواف نکرده لازم نیست صراحت لفظش غیر منطقی بودن و غیر عقلی بودنش کافیه برای ما که چی این حدیث دروغه بس ما عبرها مختلف داریم ما اون عقلی می که تضاد شرعی و تضاد در اصولی داشته باشیم یا اینکه از که زلائیلی دل... که میشه... میشه تشخیط داد اعتراف خود رابی خود راوی بیاد داری که من دروغ گفتم و از جمله قرائن مخالفت فریحش با قرآن یا صلحت یا مثلا به بالفرد یک از جمله مثلا های که منحجر بیدنیم مثلا از امام فخر رازی نقل میکنم فخر دین رازی میگه مثلا بالفردی که روایتی هست. میایی تحسیش میتونی دنبال میگردی. در هیچ کتابی از کتابی قدیمی نتونن ابن مواجب، موامسانی، معاجب پیداش نمی کنی. یک شخصی اومده، الان مثل کلینی باشه در قرر شارو. یا از این راویانی که چار قرر، پنج قرر بعد از اصل نبود در کتابه قدیمی اصلا نیست. یک شخصی بیا چار قرر و پنج قرر بعد. یک حدیث رو نقلو کنند که در هیچیک از کتابه قدیمی نیست در سنده های متصلی میگه این سریح در درو بودنش دیگه لازم نیست که چی دنبال بگردی که این رابی متهمه اون رابی متهمه حدیثی که اصل نداشته باشه در کتابه های اصلی در اون زمانی که سند متصل بود وقتی که این حدیث وجود نداشته باشه دیگه نیاز به بحث و تحقیقش و دنبال گشنش نیست خب حالا این قرآن و این چیزهایی که میتونم باش تشخیص داد که ایک حدیث داره درود خط یا نیست خوان المهندس رحمه الله وقال سیقو نمید تقریب <تصفح> الحیث اقرار راری بالرق فی رده نیست بقافید فی کمی موضوع لجواز ان یکملت فی الاطرار قلتو ها فیه بعض رفید ونحن لو فتحنا باب التجميد والحكمال الضعيف لرفعنا في الرسلتة والسخصة نعم كشمنا الأحادث التي ذاتنا لا دليل على كما أن كثير من الموضوعات لا مرتبط في شرعها مضوع خب الله ينبحث في قناة بحث موضوع هم يجوه خاطئ مفيدا بكنا ميك الشيخ منا من داخل الضعيف ميك أقاديك ربي أقرار بكنا بالضروب بودن روایتش میگه قطعیت در درون بودن روایتش نیست چرا میگه چون احتمال داره اون شخصی که اقرار میکنه من, میکن من دروغ گفتم در خود اقرارش دروغ باشه در اقرارش دروغ گفته یعنی احتمال داره که خود مثلا بفهمه اعتراف میدوره که من دروغ گفتم این اعتراف خودش دروغ باشه دروغ باشه لیکن اون چیزی که ما زهبی نقضی کنیم میگه که دیگه این گفته یعنی وزن آنچانانی نداره اگر ما درشو باز بکنیم دری را باز کردیم از وزبسته و سفسته که پایانی نخواهد داشت وقتی که اخرار میدونیم من دروگ گفتم دیگه جلال چه شخص میخوام بکنیم تردیف بکنیم در روایتش و در فدانش بله شخص دروگ احتمال در راست دیگه ولی اون چیزی که راست بگه جایی دیگه هست نیازی اینش نداری صدقه حقوقتی بود این راست گفته لیکن به ما چی مهمه خود آقایی یک شبت از شما نیاد میگه که آلمانی نگاه بکنید احادیث مثلا بالفرد احادیث بخاری فرامی حدیث بخاری گفته موضوعه در سفری احادیث آورده و این فرد نمیدونه مثلا بالفرد این روایتی که مثلا آلبانی گفته موضوعه از چه چطریقیه؟ راوی درون بود ما وقتی یک روایتی را صدقیق می کنیم میگیم موضوعه بر اساس چیه؟ بر اساس راوی و جای هم میشه چی؟ بر اساس مدنم بشه پس نمیشه یک عالمی را نقد کرد بر اساس نقضی که به یک راوی برمیگرده بر اساسی مثلا فلان راوی که وضع و دروازو هست حالبان این گفته بزرگه هرچند که امتنش صحیح شد و در صحیح بخاری ها مسلم هست میگه که هرچند که احادیت و احادیت بسیاری هستن که دلیل بر وضعشون نیست و خیلی از این موضوعات هست ما هم شک در موضوع بودنش نمی کنیم حالا در اون موضوعاتی که چی که علت اصلی دروغش مشخص نیست که کدوم یک از این اشفات راوی کدوم یک از این راویان دروغ گفته بلیه هرچند که ما از این ربادت زیاد که مشخص نیست عیب و از کجا ما شک و تعدیل نداریم ولی شک موضوعیتش رو بیدیم ولی که بحث خیلی یعنی من این نقطه رو بگر مند دلنظر، من نظرم هست اونم این که این در هایی که امام ذهبی میگه خیلی خیلی نیست من ما مثلا به فرض نوضات امام ابن داریم وقتی که میام بنرسی میگیم جُل روایت اکثر روایت علت وضعش مشخصه فلان رابی و فلان رابی و علل راوی راویانا که داشته خیلی اندک و کمه است که ایبو علت مشخص نباشه که مثلا به فرض از اسخودم راویه که این حدیث دروغ در اومده یا مخالفه با حدیث دیگه یا نفس صریح از قرآن در اومده خیلی کمه یک دو سه تا چهار یا پنج تا خیلی کمه اونطوری که امام ذهبی هم میگه که نیست یعنی اونطوری که امام ذهبی اقرار میکنه که احادیث زیادی هستن که ایب علتش مشخص نیست وضعش مشخص نیست که از کجا مثلا وضعش درو شده ما چطور نمیتونیم قبولش کنیم خیلی شو قطعه نداریم خیلی کمه قطعه کمه اضافه می کنیم خب آنه مباحثی هست در بحث حدیث موضوع این از باب فائده هست و ادامه بحث هرچنکه بحث موضوع خیلی بحث بازیه در حدیثش انواعش رابیانش کساب هایی که نوشته شده خیلی بحثش دیاده لیه که امام زهبی اینجا خلافتش گفته ما بعد فقط بعد, بعد سواید عامی که بهش نیاز داریم و عبور میکنیم کنیم. اولا حکم روایت روایت موضوع مثلا بالفرد من می دونم فلان روایت موضوع است. من بیان بالای منبر و بالای در خود به مثلا بعد زکات بیان و حدیث اون که بخاری در تکتیرش نقم میکنه کنه اون شخصی که که میاد نظر رسولا می دهد دعا بکن که مثلا دوتفندانم زیاد بشه بالفر وقت زکار دادن رمضان من بیام در ملای عام این حدیث برای مردم رو باید رو برم. که بله یک شخصی اومده رضا رسول الله نمیدونم که در خواسته که دعا که مالم زیاد بشه مالم زیاد شد گفت فلان میشه و فلان میشه بس فلان شد درسته؟ سکر میشین این اشقاییه که میدونن این حدیث موضوعه یا بهشون گفته شده در کتابی فلانی این کتاب ذل احاديث الموضوع زياده بياد براي مرضم نقل بكنه شک مشيه اين حديث حدت واصله شكر مراجعه ميكنه در صحيح مسلم حديث سمر بن جندم داريم كه ميگويد كه سيدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن حدث عني بحديث من حدث عني بحديث يرى أنه يرى انه كذب فهو احد الكاذبين فهو احد الكاذبین و هم فهو احد الكاذبین هر دوتاش درسته هم با کاذبینش هم کاذبین کسی که از من حدیثی نقلی کنه که گمان دروغ ازش بیاد یا دروغی درش باشه خود اون شخصی کس دروغ بیانه چون نمیده امام بخاری حدیث موضوع رو روایت بکنه یا امام ابو داوود یا امام نسایی؟ هر تک شرط صحت در کتابشون نبوده چرا چون از این وعید شدید میترسیدند ائمه حدیث ائمه اهل سنت تقوا داشتن میترسیدند از شرط دروغه روایت بکنن در این وعید شدید داخل بشن و جز دروغهام باشن. پس انسان باید تعریف باشه هر کتابی رو نخونه اگر کتابی رو میخونه دنبال صحیح و باشه اگر میخواهد چیه در نظر خودت دوز دروگیان نباشه فه این یک پند و یک اندرد مهمی است از رسول الله صلی اللہ علیه و سلم برای امتش ابن ملاقین و همین امام ابن حجر الان مسئله بعدی فایده بعدی چیزهایی که سبب شده که در علم حدیث نبوی دروگ گفته بشه اولا اولین رتبه بعدتر رتبهش دروغ گفتن اوه یعنی اون وانشینی اقسام یا علت های دروغ در حدیث نبوی اولا تسوفت و بعد حدیث در ترقی و ترتیب برای تشویق علم های صالحی، انسان های صالحی میان به اسم عبادت به اسمی که مثلا به بالفرد مردم را تشویق بکنن برای خوندن قرآن میان مثلا چی؟ حادیثی را عمدن دروغ نقل می کنن چیه؟ شبهشم اینه که رسول الله گفته من کتب علیه کتی که بر من دروغ بگه ما که بر رسول دروغ نمیگیم ما برای رسول الله دروغ میگیم من کذب علیه ما علیه رسول الله برزد رسول الله رو باید نقلمی کنیم ما دروغ لرسول الله برای رسول الله میگیم این تجویز از کرامیه بوده افباع ابن سعیل کرام که از جهلشون و دورگدریشون از احادیث نبوی که جهلشون در اینجا نهفته است که اینها ندانستن که دین ما کامله شرع ما کامله نیازی نداره که کسی بیاد کاملش بکنه برای دین حدیث بیاد دین ما نیاز به فلانو به مناشو ما ندارد. دین کامل شده. الیوم اکمل تو. لکم دین اکم. دین از طرف خدا و خودش کاملش کرده. پس ما دروغ برای رسول الله و بر رسول الله نداریم همشون. دروغه و فرقی با هم نداره هرچی که از عمد باشه. دروغه بر رسول الله و دروغ بر خداونده. چون اینه لا ی انتقان هواین هو الا وحیون یو حالا رد ردود زیاده که ما محافظ در نکت نقل میکنه مثلا بعضی ها گفتم که این وعید در شخص معین معینی هست ما میگیم عبرت به عموم لفظه نه به خصوص سبب هرشان که را بلفردن نگیم در شخص معینی که ما قبولش نداریم مدرک امروش نداریم بیکن عبرت به بی عموم لفظه تحديد عامه هر کسی که دروغ بگه نگفت فلان شخص اگر دروغ گفت بعضا گفتن که نه این حدیث در حق کسی که مثلا خواسته بدی رسول الله را بگه یاد دین را بدنام بکنه ما این هم قبول نداریم حدیثشم قبول نداریم حدیث رو روید میکنن که که رسول الله صلی الله علیہ وسلم وقتی این حدیث را نکن من کذب علیه متعام بدم اطحاب ترسیدن و نبیدونن رنگ روی ازشون فرید بعد گفتن یا رسول الله شکار بکنیم ما سمیش نوین زیاد و کم میکنیم عوض جلو کم و نمیدونم جلو و عقب میبنم شکار بکنیم بدر رسول الله عن ذلك ولكن انيت من من كذب علي يريد عيبي وشين الاسلام فتك ايبه منو بخذ بیاره در بیاره یا بدی هذا حدیث باطل وفي اسناده محمد بن فضال بن عضيه على تكذيبه اتفقوا اتفاق أهل السنة اتفاق ولمون الحديث در دروب بودن رابيشه وقال صالح, صالح الجدرة كان يضع الحديث خب این شك وشبه ولو حتى ك زياده امام چند رجل امام ابن حجر نأمي كنه الله این بسر فضا سرد و سرد وشي كه دومن دو از اصباب و دوایی وز زندقه هست اشخاصی برای بدنام کردن دید برای اینکه که اسلام را دینی بدی به مردم برسنن بگن که مردم اسلام دیدون که چه دینی زشتیه چه دین فلانیه مثل وقت همون خدایی که میگه از معقد وارد می از ذهن اولاغ میاد بیرون اومدن خدای مسلمان را این چینین برد بکنند مثل یک جسمی هوایی که از این برمیره یا دون بردی رو میره دعالالله عمای خودون علوان کبیره سبومن چابلوسی به طبق حکام یعنی یک شخصی بخواد مثلا به عالمی به خودش نزدیک بکنه مثل همون غیاف ابن ابراهیم که مثالش با امیر المومنین مهدی عباسی دارید بعضی جا هم برای تکتو برد روزیه من اکل بازنجان کنت الله و شفیعی اومن قیامت کسی که بازنجان بمره شفاعتش میکنه روز قیامت بازنجان فروش میخواد چی؟ برای بازنجان چیزار بکنه؟ تبلیغ بکنه برای تبلیغ سلعش و کلاش یا پنجم برای انتصار و یا تعیید یک مذهب مثل حنفی ها سیخوز علیکم زمان رجلون اشتر رجلون یقال لهو ابن, ابن ادریس هو اشتر علیکم من ابلیس زمانی میاد یک سختی میاد بر شما کرد ابلیس هم بر شما شدید تره اسمشم محمد ابن ادریس هست محمد ابن ادریس شافعی متعصبه از حنفی ها روایت رو بردن که چی؟ شافعی ها را بدنا بکنند و بگن که شافعی ما بدی بوده و فلان بوده در حدیثم اومده بدی و کس ابیس هم بستره حرفش رو ندید این به قصر رعی مذهبه برای این مذهبش اومد این حدیث را نقیه حنفی اومده به قصر که با احل سنت و احل حدیث مخالفت بکنه احل حدیث را باید نقیه دن که شید که انگوش سباب سحیات بالا بیاد و بر شیطان هم شدیدتره حن میاد بر ضد این رعیت، بر ضد این حدیث میاد میگه که نه. کسی که رحمت سبابه در نماز بکنه نمازش باطله. پیش شما نمیدونم با باد از شکم از نماز بره بیرون نمازش باطل نیست با انگوشت بالا بردن نمازش باطل میشه. ای نه با عقل میخونه، نه با شعر میخونه، با چه منطقی میخونه. در مطب حنفی ها خود رو خونید در, در عمضت لحقا. باده از چکم بیرون رفت نمیدونم آبی خوردن نمازشون باطل نمیشه بلکه فرقی با سلام دادن نمیکنه در ندشون ولی اگر انگوش در تحیات بلا آوردن نمازشون باطله برای چیزی این احادیت اووردن؟ برای تایید مثلا یا شیشومین مبحث از اخباه بدوائی درو به احادیت درو اووردن برای اینکه که مثلا شہرت پیدا کنه یک احادیث رو بیاره که دیگه نداشته باشه. برای شهرت میاد احادیث رو نفری کنه. خب این خلاصه‌ی بحث حدیث موضوع میدونم خیلی خسته شدی. واقعا خیلی زیاد و در حوشور شوردام بود. بَس تا اون وجب کنیم خب سوالی گیره. در هر جواب وقتی از خواب به یک موضوع یا یک خدید یک گفتر جنبه صلی اللہ علیہ وسلم برخواد مگرد این توس دارد شد مسئله اگر اگر از جنبه خارج اومدن به چیزی میشنگیدن که آیش ای حامل ما بیشید مثل حتی برای اگر اگر اگر اگر این هم آیا چین گفتاری هست در بوده همین کسوان تند قبل من حد اثر من حدیثا یوران او کلی؟ امکانی شکل یک چیزی بگن درست یعنی یکی چیزی نید بترسیم از این مثلا با یک رفتی پیران بشتیم بعد اون شما چون شما این معلوم شمای کار ما در بحث بحث شما دو جمعه داده یک بحثش در زمن خود صحابه احتمال اینکه مثلا بترسن از اینکه شامل اون و وعید بشن این زیاده در اصحاب حالا نه در بحث نقل حدیث در همه چیز، در اعمال، بخش بحث, بحث نفاق میشه، بحث خیلی بخش بخش میشه، میترسیدن که حتی عمران فقط میگه، من میترسیدن که من میاد به حضریفی میگه چی؟ آیا رسولا به من از جمله منافقین حساب نگه؟ از نگفته. صحابه اینچین ترسی را داشتن. این از تقوی شدن. یک مسئله دیگه، مسئله اینه که آیا اصحاب میترسیدن که بر رسولا دروغ بگن؟ خصوص، یک مسئله خاص. دروب چه موقع حاصل میشه ما مثلا احادیث رو بکنان هم بداریم همین حدیث انما العمل بالنيت اینجا یک لفظ اینجا یک لفظ اینجا لفظ دیگه یا حدیث همین منفرد ولی متعدی ببینید الفاظ مختلف آیا صحابه بلند دروغ گفتن خیلی ما می‌بینیم که خود از در نقل الفاظ خیلی دقیق است مثلا بحث ورزید که مثلا انس بیاد نقل میکنه میگه او كما قال صلى الله علیه و کلمه او رو بالقو فرق جایی که میترسی که یک علیفی کم و زیاد میشه لیکن آن در سبقه بعد تابعین و بعد تابعین این مثال کمتر میشه چون اهمیت خاصی میدادن و مینوشتن این مسائل دیگه کمتر حریص بودن روی رو رو رو رو این ها لیکن اصحاب خیلی دقیق بودن میترسیدن که مثلا دلتر یک علیفی را بگن که رسول الله نگفته لیکن آن مثله ترواتби баъдан ва таъсиришро мебинам чӣ қадар ҷоигоҳ дорад дар ҳадиси набавӣ ин масъала хоҳима дар замина дар санҷон. ман мехоҳам ки бидошам мана имкони гуфтане заки харидж сам ворид буд чизе ки гуфта باشه бад аз ин харидж худро сахр нагучанае ё чизе морин ани агар мо мафхум кушед аз сат са قلت هذا ونحن نتبع منك الحديث فنزيد وننقص ونقدم ونأخر فقال صلى الله عليه وسلم أعني ذلك ولكن عنيك من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام همي جرواه خاتم يبدو ميكونا يعني قلتك الرسولة قلت على تهديث كذا إكاشي أزمان بدروغ ناقل ناقل ناقل يوجد دروغ برمان يا رسولة قلت ما ناقل ميكونا مثلا بقلتك من مدعبات فلنجوه فلنجا فلنجا ناقل ميكونا الان اینو نمیدونید که چطور نقل می‌کردن چه نقل کردن الله حتی این حدیث, حدیث موضوع مقدس موضوعه یعنی حدیث موضوعه دیگه اگر بذار معنای دهی باشه نوعه زیاده و نقص را خود راوی مشخص می‌کنه دیگه حالا زیادی و نقص و یا تقدم و تاخیر یعنی ما این زیادی دخل و نقص و یا تقدم تاخیر در حالتی که الی هم درخل ترتیب ترتیب شاشا داشته میشه در جایی که مفہوم حدیث عوض نشه ولی کہ مثال نزدے بر اثر مثلا واو یا فا باشه فان وان نبی اور بفش شويه اگر باشه لیکن تاع تغییر مفہوم معنا خیر مطلقاً شود انما به لغت عربی واضح بوده براستون اگر یک حرفم سو فکرون نکرد سو سبحانك اللھم